سلام و درود به همه شما عزیزان شنونده با قصه خیات باهوش در خدمت شما هستم. یکی بود یکی نبود. روزگاری شاه شاهدختی بیش از اندازه مغرور در گوشه ای از این جهان زندگی می کرد. اگر خواستکاری جرأت می کرد خودش رو بهش نشون بده اون با طرح چند معما و چیستان حالش رو جا می آورد. چنانچه خاستگار نیمیتونست جواب بده اون رو خار و ذلیل میکرد و خدمتکارانش مسخرهکنان اون رو از شهر بیرون میکردند. اون در همه جا اعلام کرده بود که به تازه واردانی که میخوان مهارت خودشون رو آزمایش کنند خوش آمد میگه و اگر کسی بتونه به معماهاش جواب بده اون رو به همسری برخواهد گزید. از قضا سه خیات به هم رسیدند. دو خیات بزرگتر، بعد از اینکه تونستند با موفقیت تعداد زیادی کوک عالی و محکم به پارچه بزنند به طوری که حتی یکی از اونها در جایی نادرست قرار نگرفته بود فکر کردند که واقعا میتونند از پس پاسخ دادن به معماها و چیستان ها بر بیان سومی که جوانکی تنبل بود و اصلا در کار خودش مهارتی نداشت فکر میکرد که حتما از عهده کار بر میاد و برای یک بار هم که شده باید دست بکار بشه در غیر این صورت وجودش چه فایده ای داره؟ دوتای دیگه بهش گفتن تو توی خونه بمون با اون مغزه کوچیکی که داری هیچ وقت کاری از دستت بر نمیاد اما خیات کوچیک ترس به دل راه نداد و گفت که تصمیم گرفته برای خودش اعتباری به دست بیاره پس مصمم راه افتاد انگار که تمام جهان از آن اوست سه خیاط وارد قصر شدند و از سمت شادخت پذیرفته شدند. اونها از اون تقاضا کردند تا معماها رو مطرح کنه. اونها گفتند ما مردانی هستیم که هوشی سرشار داریم و کارمون رو با ظرافت تمام انجام میدیم. بعد شادخت گفت: دو نوع موی متفاوت در سرم دارم. اونها چرنگی هستند؟ اولین خیاط گفت: باید بگم که به احتمال زیاد سیاه و سفید هستند. درست مثل نوعی پارچه که ما اون رو فلفلی و نمکی صدا میزنیم. شادخت گفت غلطه. خیات دوم گفت خب پس اگه سیاه و سفید نیستن بدون شک قرمز و قهوه‌ای هستند. مثل جلیقه‌ای که پدرم روزای یکشنبه می‌پوشید. شادخت گفت باز هم غلطه. حالا بذارید سومی صحبت کنه. به نظرم اون می‌دونه. خیات کوچیکتر شجاعانه پا پیش گذاشت و گفت یک تار موی شاهدخت نقرعی و دیگری تلائیه. شاهدخت با شنیدن این مطلب رنگ صورتش پرید. تقریبا داشت از ترس می میکرد. خیات کوچیک درست به خال زده بود. شاهدخت واقعا باور داشت که هیچ موجودی نمیتونه درست حدس بزنه. وقتی به خودش اومد گفت فکر نکن که منو شکستادی. شکست دادی. هنوز چیز دیگه ای مونده که باید از بر بیای. پایین اینجا در طویله خرسی هست که باید امشب رو با اون سر کنی و اگر صبح که بیدار شدم تو رو زنده دیدم حتما با تو ازدواج میکنم اون دلش میخواست که به این طریق از شهر جوانک خیات خلاص بشه خرس هر کسی رو که بهش نزدیک میشد زنده نمیذاشت. خیات که اصلا ترس سرش نمیشد با خوشحالی گفت نیمی از راه پیروزی رو طی کردم وقتی شب از راه رسید اون رو به استبل بردند. خرص با نشون دادن پنجه های بزرگش بهش خوش آمده گرمی میگفت. حیوان میخواست همون لحظه اون رو بگیره. خیاط گفت: آروم باش. به زودی یادت میدم که آروم بشی. اون با خونسردی مشتی گردو از جیبش درآورد و سرگرم شکستن و خوردنش شد. انگار که در این دنیای پهناور هیچ غم و اندوهی نداره. وقتی خرص این صحنه حواس گردو کرد. خیاط دست در جیب کرد و مشت پرش رو در آورد. اما چیزی که در مشت داشت سنگریزه بود، نه گردو. خرس همه رو توی دهانش ریخت، اما هر چی کرد نتونست اونها رو خورد کنه. خرس پیش خودش فکر کرد، خدای بزرگ، عجب احمقی هستم. من نمیتونم حتی یک گردو رو بشکنم. بعد رو به خیات کرده گفت، میتونی این گردوها رو برام بشکنی؟ خیات گفت تو دوست خوبی هستی، پنجولهایی هایی به اون بزرگی داری، اما نمیتونی یه گردو بشکنی. بعد سنگریزه ها رو گرفت، به سرعت اونها رو با گردو عوض کرد و شکست. خرس گفت بزار منم امتحان کنم، وقتی میبینم انجام دادن کاری خیلی آسونه به سرم میزنه که خودم از پس اون بر بیام. این بار خیات جوان مقدار بیشتری سنگریزه بهش داد. خرس بیچاره خیلی سفت و محکم اونها رو جوید. من که زبونم نمیچرخه بگم که حتی نتونست یکی از اونها رو نصف کنه. خیاط ویولون کوچیکی رو که همراه داشت در آورد و شروع به نواختن کرد. خرس با شنیدن موسیقی نتونست جلوی خودش رو بگیره و به رقص در اومد. بعد از اینکه مدتی دور خودش چرخید، کاملا سر حال اومد و به خیات گفت: "آیا ویولون زدن سخته؟ خیاط جواب داد بیشتر به بازی بچه ها میمونه ببین چیکار میکنم سیم ها رو با انگشتای دست چپ فشار بده و با دست راست آرشه رو روش بکش بله مثل آبخوردنه آرشه رو بالا ببر و پایین بیار خرس فریاد زد خیلی دلم میخواد به از این به بعد هر وقت میلم کشید برای خودم مینوازم و میرقصم تو چی فکر میکنی می کنی به من کمی یاد بدی خیاط جواب داد اگه خیلی دلت میخواد با کمال میل یادت میدم اما بزار پنجه رو ببینم ای وای ناخونات خیلی درازه قبل از هر چیز باید اونها رو بچینم بعد رفت و یک جفت چوب بست ورد و خرس پنجه رو در چوب بست کرد خیاط اون رو سفت و محکم بست بعد گفت حالا صبر کن تا برم قیچی رو بیارم اون از پیش حیوان رفت و خیرس با خوشحالی زیاد از ته دل نعره سرداد. ولی گوشه دراز کشید و زود خوابش برد. وقتی که شاهدوخ صدای بلند نعره خیرس رو شنید مطمئن شد که حیوان از خوشی فریاد سر میده و حال خیات رو جا آورده. صبح روز بعد وقتی بیدار شد خیلی شاد و سرحال بود. اون پیش خودش فکر میکرد که از شر خیات رها شده. اما وقتی که چشمش به طویل افتاد، دید که خیاط سعیح و سالم مثل ماهی که تازه از آب گرفته باشند به در تکیه داده. با این حساب شاهدخت نمیتونه زیر قولی که آشکارا داده بود بزنه. پادشاه دستور داد که کالسکی حکومتی شاهدخت و خیاط رو برای برگزاری مراسم عروسی به کلیسا ببرند وقتی برای افتادند، دو خیات بدل که به خوشبختی خیاط جوان حسادت میکردن به طویله رفتن و دست و پای خرس رو از چوبست رها کردند. خرس که از خشم کف به دهان آورده بود بیرون دوید و سر در پیه کالسکه گذاشت. شاهدخت که صدای پفف و خرخر خرس رو شنید از ترس داد زد وای خرس دنبالمون کرده اون حتما ما رو میگیره خیات خیلی آروم بود. به آرامی روی سرش ایستاد پاهاش رو از پنجره کالسکه بیرون کرد و رو به خیرس فریاد کشید چو بس رو میبینی اگر همین الان به خونه برنگردی دست و پات رو محکم میبندم خرس با دیدن پاها و شنیدن حرفهای خیات سرش رو برگردوند و با سرعت تمام انگار که پر درآورده باشه برگشت خیات با خیال راحت به طرف کلیسا رفت و در اونجا با شاهدخت پیونده ازدواج بست اونها سالهای سال با شادی و دلخوشی مثل دو قمری عاشق کنار هم زندگی کردند حالا هر کسی این قصه رو باور نداره باید یک سکه بده سکاتون آماده کنید روز و روزگار خوش سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غولها و کتوله ها ماجراهایی از جادوگرها سفر به سرزمینهای جادویی و تلزم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمینهای زیر دریا همه اینها و بیش از اینها در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی